عبر آمد و باز بر سر سبزه گریست، ایباده ارغبان نمی زیست، این سبزه که امروز تماشاگه ماست، تا سبزه خاک ما تماشاگه کیست. امروز که آدینه مرورانا است می نوش کن از چه جای چجای است؟ هر روز اگر یک قده می خوردی. امروز دو خرکس یدل احیام است. آن باده که قابل سبر هاست به ذات، گاهی حیوان همی گاه گاه نباد زن نبری که هست گردد حیحات موسوف به ذات است اگر نیست سپاد. از آتش این طاقه جز دودی نیست و از هیچ کس هم امید بهبودی نیست دستی که ز دست چرخ بر سر دارم در دامن هر که می زنم سودی نیست.